خیلی وقت داشت به طول یک شب طوفانی این که ساعت به جای مسابقه می ایستادند و با هم نجوا میکردند اشارا هم تمام کرد. زیر لب تسبیح می گفت. پروانه ای از جایی آمد و با عجل خود را به شیشه لمپا کوید. چند بار این کار را تکرار کرد. صدای بالهایش در اتاق می پیچید. هم صدای پروازش و هم صدای برخوردش با شیشه سوزان. پروانه دیوانه شده بود. کمی از لامپا فاصله می گرفت، دوباره به سمت شعله پر میگشود و بال می سوزاند تاقت نیاورد جانماز را بس و از جا برخاست تا به دیوانگی های پروانه پایان دهد اول می خواست با دست نگذارد به شیشه نزدیک بشود اما حریف نشد پروانه خسته کرد چند بار خود را به شیشه زد و پای چراغ روی تاخچه افتاد. دفعه آخر آن را در مشت گرفت و به طرف طویل برد و در مقابل نگاه پرسان گاو مشتش را باز کرد و پروانه به زحمت پر زد و در تاریکی فرو رفت. گاو ایستاده به اون زل زده بود. از طبیل بیرون آمد. هیاهوی بلند باد در دالان بیشتر شنیده می شد. گاهی هم به در چوبی پنجه می کشید و زلفی را به صدا در می آورد. سر شام آنا سکوت را شکست. پدرت تو باکو به دنیا اومد. اونجا برای خودمون خونه داشتیم. پدر بزرگ خدا بیا مرزه تو شیلات کار می کرد. خیلی بودیم. از همین در دره کوچیک پنجشیش خونه پیش هم بودیم حالا ببین از دهات دیگه چقدر اومده بودن وعظمون بد نبود دستمون به دهنمون میرسید تا اینکه یه روز دیدیم عکس سه تا به در و دیوار زدن مرغ اول بال کامل بود مرغ دوم نصف بالوپرش کنده شده بود اما مرغ سوم یه دونه مو هم نداشت میدونی برای چی این کاری کرده بودن اسمایل که کنجکاو شده بود کمی فکر کرد و گفت نه سر در نمیارم خوب حالا میگم پادشاه ایران به روس نامه نوشته بود و گفته بود من ملتمو میخوام اونا رو برگردونین روسم گفته بود اونایی که کمونیست بشن و شناسنامه روس بگیرن میتونن بمونن در غیر این صورت باید برن اون ستا مرغ یعنی اینکه هر کی زود رفت همه داراییشو میتونه ببره هرکی که دیرتر بره نصف داراییشو میبره اما هرکی کی آخر سر بمونه مثل اون مرغ پرکنده باید دست خالی برگرده اون وقت شما کی اومدین؟ ما با وسدیا برگشتیم و نصف داراییمون هم آوردیم. اسماعیل گفت: عجب برنامه‌ای، حالا کسی هم بود که بمونه؟ بودن که موندن، قربونت برم. اون‌ها رفتن زیر بلیط بلشویک‌ها خدا رو کافر شدن. ما میمردیم هم با اونوز نمی‌موندیم. هر طور شده برمیگشتیم وطن. در همین موقع صدای در داخل بلند شد. کسی از آن پشت در میزد. عجله داشت. هر دو دست از سفره کشیدند و به هم خیره شدند. لقمه در دهانشان مانده بود. اول اسمایل به حرف آمد. کی میتونه باشه این وقت شب؟ نمیدونم. اونم با این باد و طوفان باز هم در زدند. آنا به پشت چرخید و گفت. هر کی میخواد باشه. این وقت شب خیر نمیارن. طوفان تند شده بود و زوزه میکشید. گاهی انگار میگریست. صدای هزینش از روزانه ها به درو می خزید. ساکنان دشت ها و باغ همه خواب بودند غیر از باد غربی سرگردان که می رید و می و سر به دار و دیوار میکوبید و ته دلها را خالی می‌کرد. اون دفعه هم بی خبر اومدن و در زدن و رو بردن اسماعیل نگاهش کرد صدا از باغ می آمد. از حوالی رود گاهی هیاهون بود گاهی ناله درختان پیر و شاخه های شکسته گاهی فریاد مردان ناشناس بود و جیغ زنی تنها که با صدای قازهای وحشی مهاجر در هم میامیخت. باز هم در زدند. این بار بلندتر. آن دو به هم نگاه کردند. پروانه برگشته بود و خودش را به شیشه لمپا میکوبید. صدای در بلند بود. زلفی داشت از جایش کنده میشد. چارچوب فریاد آمده بود. آنها گفت این طور نمیشه. در را از جاش در میارن. بلند شم ببینم کیه. با این حال نشسته بود و بلند نشد این بار صدای بابه گوسفندان و فریاد بره ها هم لابلای باد بود خروسی بی وقت می خاند. اسبی در دور دستها ها شیه می کشید مردی سر بنفش در را میداد، اما باد صدایش را به در سبلان میبرد و پشت سخراها پنهان میکرد. برم باز کنم آنا ایستاده بود و می پرسید کن پا به خدا پس تا من نگفتم خودتو نشون نده خیلی خوب، میرم پشت مفرشا آنا رفت پروانه پای چراغ لمپا افتاده بود و بال بال می زد. صدای کلوم بلند شد به دنبال آن صدای زنی آمد آنا چرا منو پشت در گذاشتی؟ چرا باز می کردی؟ صدا آشنا بود، آشنا شبیه صدای سنا پس چرا برگشتی؟ اینجا چیکار کار می کنی؟ برگشتم دیگه یه بار رفتم یه بارم برگشتم به دنبالش خندید در این مدت اسماعیل خودش را به دالان رساند با تنوره میکشید و به درون می‌خزید و لباسهای سونا را در هم می‌پیچید آنها به بیرون سرک کشید و برگشت و در را بست و پرسید با چی برگشتی با اسب کجاست همین طرف طرفا نگران نباش خودش را به اتاق رساند اسماعیل بلا تکلیف ایستاده بود سونا و دیدنش گفت سلام آقا اسماعیل، مزاحم خواب شما شدم. نه، خواب نبودیم. برگشت این بار به آنها گفت. خیلی منو پشت در نگه داشتین آنا ما در از مأمورات ترسیدیم. اون دفعه هم شب ریختن و اسماعیل بردن. این دفعه هم رئیس پاسکا گفته اگه اسماعیل بمونه خونش پای خودشه. سونا نشست. غلط کرد همچین حرفی زد. ادامه داد. میترسه سوار اسب بشه اون وقت میخواد آدم بکشه؟ آن دو هم نشستند. آنا برایش چای ریخت حسابی یخ زدی تو این باد بعد پرسید خب نگفتی اینجا چیکار کار میکنی؟ تو رو که عروس کردن و بردن چطور برگشتی؟ من هیچ وقت زن اون شکم گنده نمیشم اونجا هم که رفتم وقتی هوا تاریک شد سوار اسب شدم و فرار کردم اسمایل کنچ شده بود آنا با تعجب پرسید چطور؟ وقتی رسیدم گفتم از است. حتما زین و رو باز کنین و بهش علف بدین شرط گذاشتم اگه این کارو نکنین منم تو اتاق نمیرم. نگاهشان کرد. هر دو با تعجب چشم به او دوخته بودند. آنا گفت: «خب بعد. پخم هر کار کردن نتونستن. خود رئیس پاسکا جلو اومد جعت نکرد. شیهه کشید و چشما شد مثل مثلدونلبکی پر از گلایش. گفتم برین گورتونو گم کنین شما مرد نیستین. همینطور واییسده بودن و نگاه میکردن. این بار بلند گفتم زود گورتونو گم کنین. این اسب از شما بدش میاد. تا اینجا این نمیزاره زینا اینو رو بردارم از جلو چشمم برین استوار رو از حیات بیرون کرد و خودشم رفت تو یکی از اتاقا. اسب کشیدم دم در حیات سوار شدم و اومدم بیرون هوا تاریک شده بود منو نشناختم اومدم خیابون اصلی از اونجا خودم رسوندم به پل پل بزرگ چنددهنه این را اسمایل پرسید آره بعدم از کنار رودخونه تاختم و اومدم دریاچه از اونجا هم اینجا اسمایل جابجا جا شد باصلاغ چی؟ تو تاریکی از باصلاغ هم گذشتی؟ اسب اونجاها رو خوب میشناسه. راه رو بلده. آنا برای سنا هم شام کشید و با دلواپسی پرسید: نفهمیدی دنبالت اومدن یا نه؟ سونا مشغول شام شد. اگه هم میومدم مگه میتونستم به اس برسن؟ چند لحظه به سکوت گذشت تا اینکه آنا به حرف اومد. حالا میخوای چی چیکار کنی مادر؟ جواب سرخانو چی میدی؟ من دیگه با سرخان کاری ندارم. پامو هم تو خونه نمیذارم پس چی؟ میخوای برگردی خونه ای استوار؟ نه اونجا هم نمیخوام برگردم برگردم. و و زیر چشمی به هم نگاه کردند سونا پی به نگرانی آن برد. من اصلا نمیخوام تو این خراب شده بمونم. میرم تهران و پشت سرم رو هم نگاه نمیکنم آنا عهث نفس راحتی کشید و پرسید خوب فکراتو کردی؟ اونجا رفتی میخوای چیکار کنی؟ اونجا چیکار کنم؟ کار میکنم آنا من سواد دارم فارسی بلدم. از گرسنگی که نمی میرم، میرم کلفتی، میرم بیمارستان کار میکنم، چه میدونم، خیاتی یاد میگیرم، بالاخره یه خاکی به سرم میریزم، اما اجازه نمیدم سرخم منو به اون استوار بفروشه، من فروشی نیستم، درسته که یتیمم، تنهام، بیکسم، اما آدمم، حق زندگی دارم. اسمایل بیان که خودش هم متوجه باشد، چهرهش گشاده شده بود و با تحسین نگاهش میکرد و به حرفایش گوش میکرد. سونان لبخند و گشادگی چهره را دید و داغ داغ گفت فقط یه خواهش از شما دارم آقا اسماعیل یه خواهش بیشتر نه اونم اینه که لطف کنی و منو با خودت ببری میدونی که یه دختر تنها نمیتونه سفر کنه باید حتما یه مرد همراهش باشه بزرگی کن و بذار همراهت بیام اسماعیل پرسید کی میخای بری هر چه زودتر بهتر همین الان همین امشب گفتم که زودتر از این جهنم جونمو نجات بدم خیالم راحت میشه راستش من میخواستم سر شب برم آنا نذاشت گفت بمون فردا صبح زود راه بیافت. یعنی آخر همین امشب دیگه آخر همین امشب با ستاره های آسمون خیلی خوب من آمادم امشب با ستاره سبک بار خندید آنا در فکر بود به قول خودش دستش به سفره میرفت و غذا بر می اما نمیدانست چه میخورد نگاه سرگردانش دور سفره می چرخید میگم یه وقت کار دیگه آدم باید آماده باشه. اگه سر و کله استوار و امنی ها پیدا شد، اون وقت چی کار میکنیم؟ سونا با صدای بلند گفت آنا شام تو زهرمار نکن. با خیال راحت بخور و با خیال راحتم بخواب. اگه سر و کله اون گونی پهن پیدا شد با من، اون وقت یه فکری میکنیم. شام و چایشان را خوردند و آماده خواب شدند. آنا رختخوابش را میان رختخواب آن دو کرد. فتیله چراغ را آنقدر پایین کشید تا شعله نیمهجان شد. با این حال چند بار خیز برداشت و پت پت کرد تا خاموش نشود، اما دیگر تمام شده بود. تمام شد. تاریکی مثل قیر فضای اتاق را انباشت. آنا سلباس میفرستاد. آهسته آمد و در رخت خوابش خوابید. زیر لب ذکر می گفت. سکوت شد. دیگر صدای باد نیامد. آرام گرفته بود در اون و بیرون ساکت شده بود آهسته گفت آنا باد خابیده شکر خدا اینجور بادا باد نیستن که بلای ناگهانی هن. عذاب الهی هن. مگه بادم اینطوری میشه زمین آسمون به ناله در میاد از دست این باد اینا همش علامته همینطوری نیست که سونا گفت هرچی بود تموم شد من کنار دریاچه بودم که فهمیدم رفت نیزار فقام میکرد، آب دریاچه میخواست بیرون بریزه، همونجا یدفه خوابید. نیها آروم شدند، درختا راحت شدند. دریاچه دیگه سرریز نکرد. خدایا، خداوندا، به بنده هات برس. خدایا ما رو از بله های زمینی و آسمونی محافظت کن. ما همه گناهکار و روسیاهیم تو نوری، تو رحمتی. چند لحظه سکوت و سیاهی شففزار رو سنگین کرد. اسمایل به حرف آمد، اون طوفانی که من دیدم حالا حالاها تموم بشو نیست. دلم به حال درختا میسوخت. طوفان عذابشون میداد. آنا گفت: تنها درختا نبودن که عذاب میکشیدن. آدم ها هم عذاب میکشیدن. وای خدا بره و دیگه برنگرده. حالا شما هم بخوابین اونقدر هی از باد و طوفان نگین شب خوابشو میبینین. با این حرف آنا آن دو ساکت شدند. چند دقیقه بعد صدای نفس های بلند و منظم آنا بلند شد. به خواب رفته بود اما اسمایل به فکر سفر فردا بود که با سفر ستاره ها شروع می شود. دلشوره داشت برای همین در رخت خواب قلط میزد، از این دنده به آن دنده می شود. اما عاقبت خوابید صبح با صدای آنها بیدار شد خواب لود بود اما میشنید. شب نرفته شما برین کنار دریاچه به صبح می رسیم بلنشین یادش آمد که مسافر است و پیش از رفتن ستاره ها باید راه بیفتد. سونا در رخت خواب نشسته بود و گره روسریش را رو سفت میکرد آنا تصویهش را توی جانماز گذاشت تا لباس بپوشین چایم حاضر میشه یه لقمنون بخورین و برین با عجله جانمازش را تا زد بلند شد و به طرف سماور رفت اسماعیل آفتابه را برداشت و خودش را به حیاط رساند از باد و طوفان خبری نبود اما شاخه ها پریشان بودند خسته و خمیده چشم به طلو خورشید داشتند با آب سرد آفتاب بزرگ گرفت و در حالی که از انگشتان دستش آب فرو می چکید به خانه برگشت و سجاده را رو به قبل پهن کرد و به نماز ایستاد. در قنوط بود که صدای زمزمه ای را از پشت سر شنید، کسی رو به قبل ایستاده بود و صدای نجیب سایش چادر نمازش شنیده میشد. چشمهایش را بست تا در ملکوت معانی کلماتی که تلاوت می کرد، بماند و صدای دیگری نشنود. نمازش را که تمام کرد آن دو کنار سفره صبحانه نشسته بودند. از جابر خاص خودش را به سفره رساند. سونا به احترامش بلند شد. هنوز چادر نماز سرش بود. بخار از روی استکانها بلند می‌شد. دلشوره سفر اشتهایش را کور کرده بود و مزه نان و سفره را نمیفهمید. اول او بلند شد بعد سونا. مواظب باشین چیزی یادتون نره. آنا این را گفت و بعد نگاهش را در چهار گوشه اتاق گرداند. و به دنبال چیزی که نمیدانست چیست و کجاست گشت باز هم یادش آمد با هم نرین یکی یکی اگه کسی هم دیدتون کمتر شک کنه کمی مکس کرد و باز هم گفت سونا اول بره اونم از کنار باغ رحمان این موقع فقط کلاغا اونجا هستن وقتی و خوب, خوب دور شدی اسماعیل میاد هم رو کنار دریاچه تو نیزار میبینین. از اونجا خودتون رو به جاده برسونین و سوار ماشینایی صبر رو بشین دست خدا به همراهتون وقت جدا شدن توی دالان در آغوش هم فرو رفتند سونا شانه هایش تکان می‌خورد. آنا او را از خود جدا کرد برو دخترم، برو گلم الهی که آقابت به خیر بشی سلام منو به دوست آشنا برسون یادت باشه من چشم به راهتم بی خبرم نذار سونا سرش را تکان داد و از دالان بیرون رفت لباسی را پوشیده بود که آن روز میان نیزار تنش بود پیراهن بلند با گلهای درشت هنایی و شال زرد آنقدر رفت که دیگر میان تاریکی و تنهای تیره درختان بید و سپیدار دیده نشد اسمایل بیقرار بود میخواست پرواز کند و به سونا برسد اما از آن شرم داشت نمیخواست بی اجازه او راه بیفتد خب اسمایلم جون تو و جون سنا اون بیکسه. مثل تخم چشم ازش مراقبت کن از قول من به مادرت سلام برسون سونا رو بسپار به اون خودش میدونه چطور مواظبت کنه. راه بیفت: ستاره ها یکی یکی خاموش میشن. موقع جدایی آنا را بوسید. اسمایی احساس می کرد این آخرین ودا است. و دیگر شاید هیچ وقت نتواند او را ببیند برای همین دست های آنا را بوسید و قدم در باغ گذاشت از پرچین چوبی عبور کرد راه ابتدا از میان گزن هزار میگذشت آخرین بار برگشت و به پشت سر نگاه کرد. آنها با کاسه مسی پشت سرش آب می‌پاشید. برای هم دست تکان دادن و او رو برگرداند و راه افتاد. از باری راهی که کنار جوی آب بود، پیش رفت. عجله داشت، می‌خواست زودتر به سنا برسد. کم کم پیشانی شرقی آسمان شیری شد و سلسله کوه‌های کوهاندار مانند قطار شتوران کاروانی بزرگ به حرکت درآمدند. با این حال، هنوز یک ستاره تنها در سینه آسمان می‌درخشید. و هرچه چه تاریکی شب دامن میکشید و سفیدی صبح عیان میشد، تک ستاره بیشتر میدرخشید و تماشایی‌تر میشد. ناگهان خورشید از پشت کوهان کوهها تیغ زرین خود را کشید و ابرهای مانده در آسمان را شقه کرد. با طلوع خورشید، ستاره برای آخرین بار فروزان شد و سپس رو به فول گذاشت. آنگاه هزاران هزار شبنم بازیگوش در سطح چمنزار درخشیدند. گویا ستاره‌های آسمان شبان شبنم شده و به زمین باریده بودند. سبکبال راه می‌رفت، حس پرواز داشت. می‌خواست زودتر خودش را به ساحل دریاچه برساند، سونا را از دور تماشا کند. او را کنار نیزار یا نزدیک دریاچه ببیند که چشم به راه ایستاده و بعد با هم به طرف جاده راه بیفتند. آنجا برای اتوبوس‌های صبح رو تهران دست بلند کنند. شاگرد راننده سرش را از اتوبوس بیرون بیاورد و بپرسد کجا و او جواب بدهد تهران اتوبوس مسافتی جلوتر روی شانه خاکی جاده به آندو دوان دوان خود را برسانند شاگرد در را برایشان باز کند سوار بشوند و بروند ته اتوبوس و دو صندلی خالی کنار هم پیدا کنند و خود را بیندازند روی آن و نفس راحتی بکشند اتوبوس کم کم راه بیفتد آنها قرق تماشای دشت های سرسبز و گله گوسفندها و گاوها بشوند. احساس کرد حوصله راه رفتن ندارد. دلش میخواست بدود و زمان را کم و راه را کوتاه کند. به شوریده یک اسب وحشی میتاخت. ساغه های ترد و شبنم نمزده چمنها پاچه شلوارش را خیز کردند و نسیم سرد صبح پوست صورتش را برافروخت. هرچه به دریاچه نزدیک تر می شد نه دریاچه می دید نه ساحل و نه نیزار تنها سونا پیش چشمش بود او دیده میشد با همان لباس با همان رنگها که در آفتاب صبح درخشش بیشتری داشت به ساحل رسید دریاچه آرام بود با موج های کوچک و ریز سونا در ساحل نبود چند قاز و اردک وحشی روی دریاچه آرام می لغزیدند نگاهش را به نیزار دوخت به نقطه ای که اولین بار او را دیده بود به آن سوده به نیزار زد صدای ساغه ها و برگ های برخاست. چند مرغ ماهی خار با وحشت جیغ زنان از لابلای نیها به سوی آسمان پرکشیدند چند بار بالای نیزار دور زدند و رفتند هرچه پیش می رفت نیزار متراکم تر می شد و او راه به جایی نمی برد احساس کرد گم شده است دور خود می چرخد و به ساحل نمی رسد یک جایی استاد نیها سکوت کردند فکر کرد ممکن است سنا از ترس یا احتیاط در نیزار پنهان شده باشد. باید صدایش می کرد اما خجالت می میکشید. تا به حال او را به نام نخوانده بود به رویش خیره نگاه نکرده بود. حالا با چه روی میخواست صدایش بزند؟ چارههای نداشت وقت میگذشت. باید پیداش میکرد و زودتر از آنجا می رفتند. خورشید بالا آمده بود. دشت روشن بود. صدایش کرد. نتوانست اسمش را بگوید. حجبی حجاب شد و او تنها صدایش کرد. کجایی؟ کجایی؟ پاسخش حس حس مرموز نیزار بود و تپش بی امان قلب خودش. به زحمت از نیزار بیرون آمد. کسی در آن حوالی نبود. رود در جلگه پایین دست دریاچه سینه گسترده بود. جلبک های سبز و بلند با حرکت رود مواج می‌زدند و می‌گذاشتند تا آب از رویشان عبور کند. و آنها چون گیسوان وانه بلند شانه بخورند و گذر آب را تماشا کنند. پایین تر چمنزار تیره بود با تک درخت بید روی بلندی. تیره پشتش لرزید. باطلاق بود. با چشمندازی فریبا و اقواگر. به آن سودوید. ناگزیر از روی نهرها و شاخه های پراکنده رود پرید. به پای بید رسید. بر سطح سبز و لرزان آن چشم دوخت. آرام بود. گاهی قباغه از زیر گلولای سرش را در میآورد و با چشم های زده به اطراف نگاه میکرد. با مانند یک راز سر به مهر بود و درخت بید تنها ناظر آن راز که سالیانی دراز لب فرو بسته بود و تنها با سرانگشتان بادی رهگذر سرشاخه هایش را تکان میداد. گاهی چند قورباغه هم نوا می به سوی دریاچه دمید غازها و مرغاوی سینه به سینه آب داده بودند و نرم بر آن میلغزیدند سر و سرکله پرستوها هم پیدا شده بود بالای باطلاق و روی دریاچه و نیزار قهی می و پشش کار میکردند. آفتاب خود را بالا کشیده بود گله گوسفند و گاو در شیب در مشغول چریدن بودند راه شهر به ده دیگر خالی و خلوت نبود رفت و آمد شروع شده بود پیاده و سواره برای انجام کار و خرید مایحتاج به شهر می رفتند. همه بودند می میرفتند. پس چرا آن کسی که باید می بود نبود؟ پس کجا بود؟ کجا رفته بود؟ رو به سوی بنفش در گذاشت. همان جاده ای را در پیش گرفت که سنا از آن آمده بود. میرفت و اطراف را نگاه می کرد. به پشت بوتهها، درختها درون گدالها چشم دواند. نشانی نبود. و به پای پرچین حیات آنها رسید. اما در نزد. او را خبر نکرد. دوباره دوان دوان برگشت. نفس نفس زنان به ساحل رسید همه چیز آرام بود سر و کله ها پیدا شده بود و در سطح آب پرواز می کردند. گاهی به آب می زدند و اوج می گرفتند و بالهایشم زیر نور خورشید رنگین کمانی می شد. باز هم به نیزار زد سنا را صدا کرد با دو دست نیه را پس می زد تا راهی پیدا کند از آنجا به ساحل باتلاق رفت به درخت بی تکه داد میخواست از آن بید تنها سوراخ بگیرد اما بید ساکت ایستاده بود و شاخ و برگشت در باد آهسته تکان میخورد